محناز، پاشو، میدونی چند ساعت خوابیدی ساعت هشت شبه؟ صدای سریا بود. با چشم چشمهایم را باز کردم. ولی نور چنان چشمم را زد که دستم را روی چشمهایم گذاشتم و خواهش کردم چراغ را خاموش کنم. چشمهایم از گریه می‌سوخت و سرم چنان درد می‌کرد که حس می‌کردم انگار مغزم به دیواره‌های جمجمه‌ام میخورد. بدنم خورد و خسته بود و استخوان‌هایم مثل اینکه زیر آواری عظیم شکسته و خرد شده باشند. همه جایم درد می‌کرد و کوفته بود و از همه بدتر قلبم انگار یک درمیان میزد و نمی‌گذاشت نفسم بالا بیاید. سره یا کنارم نشست و با آرامی دستش را روی دستم گذاشت خب دختر تو چرا زنگ نزدی بگی مریضی امیر بیاد دنبالت اون طرفم هم که مریمه بیچاره از دل هره مرد و زنده شده میتونی چند دفعه زور تا حال زنگ زده؟ بیچاره دیده تو دیر کردی رفته در مونگاه نبودی هرچی منتظر شده نرفتی مهد نمیدونی با چه حالی زنگ زد اینجا با مریم ما فهمیدیم تو چرا از حال رفتی؟ اگه نم من و امیر از کجا میفهمیدیم؟ پرسیدم کی زنگ زد همون موقع که تو حالت به هم خورد گفت که دیشب تا صبح حالت بد بوده میفهمیدم این همه توضیح سر برای چیست؟ میخواست به من بفهماند که جلوی محمد. و خانومی که همراهش بود مرزی من مطرح شده است تا برای از حال رفتنم خجالت نکشم. از او ممنون بودم ولی فکر محمد مثل مته داشت مغزم را سوراخ میکرد و برای همین به هیچ چیز دیگر نمیتوانستم درست فکر کنم. این سوال که آنها اینجا چه کار میکردند و اینکه چطور در مورد آنها سوال کنم داشت دیوانه هم میکرد. بالاخره در حالی که به زحمت می نشستم گفتم تو چرا دیروز نگفتی مهمون داری که من نیام؟ سوراغ خودش را به آن راه زد و گفت مهمون؟ مرتضی رو میگی؟ اگه بگم باورت نمیشه چطوری امروز دیدیمشون. اینه که میگن کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه. تو اصلا چرا نمیگی روز وسط هفته امیر خونه چی کار میکنه؟ امروز امیر به خاطر من نرف سر که با هم بریم بیمارستان آزمایش که باید از بیرون جوابشو میگرفتیم ببریم. وقتی برگشتیم می منو گذاشت خونه و رفت مطبخ غذا بگیره. ده دقیقه نشده بود دیدم دستشو گذاشته روی زنگ و بر نمی داره. خلسه اومده بودن اینجا غذا بخورن. حالا دیگه تو فقط حال امیر رو مجسم کن رو پاش بند نبود. محمد و زن مرتزار رو آورده بود خونه. مرتزا مونده بود تا نهار حتی نتوانستم حفظ ظاهر کنم از جا پریدم و حرفش را قطع کردم زن مرتزا؟ سریا با نگاهی که انگار تا ته فکرم را خانده باشد لبخندی مح زد و گفت آره فرزان زن مرتزا بود محمد هنوز زن نگرفته خدایا انگار قلبم را از زیر آوار بیرون کشیدند دلم میخواست از شادی فریاد بزنم و دهان سریا را که این حرف از آن درآمده بود ببوسم. مثل اینکه جریان خون توی تنم سریع شده بود بدنم داغ شد و احساس گرما میکردم. مثل آدم محتذری که با شکت دوباره نفس بکشد نفس من هم برگشته بود. بعد از سالها. با سرابان قلبم چنان تند شده بود که جلوی شنیدنم را می گرفت. خدایا، دیگر آرزوی ندارم. درست مثل اینکه یکباره از دوزخ وارد بهشت شده بودم. شکنجه آن چند ساعت در شادی این خبر فراموش شد و از بین رفت. ای کاش سرعی آنجا نبود. دلم میخواست از ته دل بخندم و فریاد بزنم و برای خودم تکرار کنم محمد زن نگرفته محمد زن نداره چه فشاری به این جسم بدبختم آوردم که بتواند روح از شادिरخسانم را تحمل کند و دم بر نیاورد فقط از جا بلند شدم و پنجره را باز کردم و صورتم را بیرون گرفتم نسیم گرم آن شب برای صورت من که مثل کورمی سخت چقدر خونکی بود آه که دلم میخواست به آسمان فریاد بزنم خدایا متشکرم که باز با صدای سورایی به خودم آمدم مهناز یه تلفن به مریم بزن سفرش کرده بیدار شدی به هیچ تلفن بزنی ولی من ذهنم فقط پر از فکر محمد بود دلم میخواست سوال کنم رویم نمیشد. توی ذهنم فقط دنبال راهی برای طرح سوال میگشتم که هم اشتیاقم را نشان ندهد و مشتم را باز نکند هم سر از هایی که داشت دیوانه هم می کرد دروبرم. همین موقع بود که امیر همراه سهر از بیرون برگشت با همه کوفتگی جسمم انگار شادی و حیجانی که توی تنم رو سخ کرده بود حالم را بهتر کرده بود تمام هیجان بینهایتی را که در وجودم او كرده کرده بود با بازی و بوسیدن سهر بیرون ریختم. به فاصله چند ساعت از آن احساس بدبختی و فاجعه عظیم، چنان احساس خوشبختی میکردم که هیچ چیز، حتی ضعف و سوزش معده، خستگی و ترس از فردای نامعلومم هم نمیتوانست چادی را از من بگیرد. آنچه آن روز تجربه کردم با رنج تمام آن سالها برابری میکرد. وقتی یاد چند لحظه پیش می افتادم که دلم میخواست دنیا به آخر برسد و احساس ضعف، درد، یعس، رنج و قصی که وجودم را له می کرد. یاد آواری می افتادم که درست به عظمت آوار هشت سال پیش بود که محمد از من رو برگرداند و مرا با همان هدت و شدت له کرد و از پا انداخت تازه میفهمیدم از دست دادن آنچه انسان دوست دارد رنجی عظیم است. ولی در مقایسه عذاب دیدن آن چیز در تملک دیگری هیچ است. و این بود که احساس می کردم خوشبختم. خوشبخت ترین آدم روی زمین. آن شب چه شبی بود. انگار روی زمین نبودم و همش فکر می کردم خدایا. اگه الان نرگس ایران بود چه بعد از سالها دوباره با چه احساس سبکی و آرامشی نماز خاندم و چشمهایم راز و نیاز به آسمان آنقدر خیره ماند تا سپیده زد و من در حالی که سهر کنارم بود با آرامشی غیر قابل وصف خوابم برد تازه فردای آن روز بود که هیجان فرونش است و دوباره با افکار درهم و برهم تنها موندم. اقلم به کار افتاد. خب حالا معجزه اتفاق افتاده. مگر تو آرزویت نبود فقط یک خبر از او پیدا کنی. حالا از آن هم فراتر رفتی. او را دیدی. هنوز ازدواج هم نکرده. حالا چه؟ چه کار میخوایی بکنی؟ اصلا چه کار میتوانی بکنی؟ میتوانی بروی و از او توجه و محبت گردی کنی؟ دوباره وا رفتم. حوادث روز قبل را توی ذهنم زیر و رو کردم. خاک بر سر بدبختت. تو بجز از حال رفتن و زیر زدن کار دیگهای بلد نیستی؟ بدبخت اونجوری جلوی همه از حال رفتی که چی؟ حالا دیگران چی فکر میکنن؟ میمردی نشه تو تا توی اتاق میکشوندی؟ حالا خبر مرگت حالت هم خورد. میگن مسموم شدی. دیگه اون آب قره گرفتن مسخره جلوی همه چی بود؟ همه فکر نمیکنن اگه خودت محمدو نخواستی دیگه این حال روزت برای چیه؟ آخ که واقعا خاک بر سرم. از همه بدتر خودش. حالا چی فکر میکنه؟ نکنه دلش خانه شد. دیگران نمی دونن. اون که خودش میدونه؟ اون بوده که منو نخواسته. دوباره چه حالی داشتم؟ انگار شادی و آرامش با من دشمن خونی بود. آخر چرا یک روز کامل هم نباید فکر من بیچاره از چرا و اما و کاشکی و محاکمه خالی باشد. توی مغزم دوباره هیاهو جنجال بود و برای همین وقتی که به مریم گفتم که محمد را دیدم، در جواب فریاد حیرت اوی که سراسیمه می پرسید اون چیکار کرد؟ زن گرفته یا نه؟ چی گفتو؟ فقط به او پریدم قرار بود چیکار کنه؟ و پیش خودم فکر کردم من احمق هر کاری لازم بود کردم لزومی نداشت او کاری بکند. از دست خودم کفری بودم. از تصویری که توی اذهان دیگران با این کار پیدا شده بود و فکری که حتماً به ذهن او هم رسیده بود از اینکه اینجوری چقدر حقیر شدم و این چیزی بود که برایم از ندیدن دوباره سختتر بود نمیخواستم برای دومین این بار من باشم که حقیر و زار شدم نه حالا که بیست و شش سال دارم نمیخواستم همه ی آنچه این چند سال سعی کردم به زور باشم حالا فرو بریزد توی سرم چقدر افکار درهم و هم بود و چه حال بدی داشتم. از سرسام و سر در گمی انگار کسی گلویم را میفشرد و حال خفقان داشتم. به خاطر همین حالم هم بود که آن روز وقتی دیدم مادرم خیلی خوشحال و سر حال است. آنقدر غرق در بیچارگی خودم بودم که حتی سوال نکردم که علت خوشحالیش چیست. و اصلا یادم رفت بگویم زیارت قبول. مادر با رنجش و تعنه گفت زیارت شما قبول چقدر جاتون خالی بود؟ آنقدر اوقاتم تلخ بود که حوصله شوخی و حرف ازخاهی نداشتم فقط یک کلمه گفتم ببخشید یادم نبود خواستم بروم توی اتاقم که مادر دوباره با ناراحتی گفت آخه مگه غیر از من و تو و کس دیگه توی این خونه هست؟ از صبح که میری غروب میای و من توی این خونه با در و دیوارا تنها. شبم که میای میری توی اونو تا خودتو حبس میکنی. ببخشید مامان به خود سرم خیلی درد میکنه. مادرم یک دفعه مقدمه گفت. زن مرتزا زنی زد تو پرسید. چنان یک که خوردم که چشمهایم گرد شد و دهانم باز ماند. مادرم چنان راحت میگفت زن مرتزا انگار نه انگار که بعد از هشت سال و یک دفعه و ناگهانی سر و کلی آنها پیدا شد. و طوری حرف می زد مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. اینکه از سره قضیه را شنیده مسلم بود ولی چرا به جای بوت یا ناباوری آنقدر راحت برخورد می کرد. چرا خوشحال بود؟ با تعجب و حیرت پرسیدم. زن مرتضا؟ آره دیگه، چه دختر با فهم و کمالیم هست. خیلی بهت سلام رسوند. حالتم پرسید و برای جمع نهار دعوتمون کرد. هرچی هم اصرار کردم، اول اونا بیان قبول نکرد. گفت ایشالله مامان که اومدن با هم مزاحمتون میشیم. محترم خانمو میگفتا. آخه حاج و محترم خانم رفتم بیش زری نمی دونی وقتی محمد گفت فاطمه بچه دار شده محمد؟ پس با او هم حرف زده بحت زده و گیچ با صدای بلند گفتم محمد گفت؟ اصلا معلوم شما چتونه؟ همچی میگی محمد زن مرتزا انگار انگار که ما با اینا قبلا چه نسبتی داشتیم مامان هیچ هواستون این اینا کی هستن؟ عقل از سر من پریده شما همچین خوشحالی میکنیم که مادر با ناراحتی حرفم را قد کرد و گفت دست شما درد نکنه نه خیر عقل از سر من نپریده آره که خوشحالم چرا نباشم؟ یک عمر با هم دوست بودیم و نمک همو خوردیم دشمن خونی که نبودیم اونا باید از ما و تو کار باشن و ناراحت که نیستن. با انسانیت و محبت زنی زدن دعوتمون کردن. به هم بر بخوره. اگه تو همه چیزت با آدمو فرق کرده من از آدم به دور نشدم. وقتی اونا با بزرگواری بروی خودشون نمیارن توقع داری من خودمو بگیرم. اینا قبل از اینکه با ما وصلت کنن هم دوست و همسایمون بودن. امیر واسه محمد جونش در میرفت رفت. الان میگه دو روز امیر از خوشحالی روی پاش بند نیست. خود منم همینطور. از صبح که شنیدم تا حالا انگار علی و امیر خودم برگشته. سوخ کردم اصلا میدونی مادر برای اولین بار بود که سر مسئلهی با من اینطور بگومگو می کرد. و من برای اولین بار نمی توانستم فکرش را بخونم و حالش را درک کنم. چرا خوشحال بود؟ یعنی امیدوار بود که دوباره نمی دانستم نمی فهمیدم. از طرفی هم این را قبول داشتم که رابطه ی ما با خانواده محترم خانم مثل رابطه ی فامیلی بوده محمد با امیر بزرگ شده بود وقتی هم رفته بود با خاطری بدی نرفته بود همه گناه ها گردن من بود و رفتن او برای مادرم به از دست دادن یک داماد و به سر خوب بود. یاد حرف نرگ افتادم وقتی زندگی وارونه باشه، اتفاقش هم وارونه میشه حالا حکایت زندگی من بود که هیچ چیزش به آدم شبیه نبود. همونطور که به طرف اتاقم میرفتم گفتم خیلی خوب، باشه، شما به خوش بگذره. یعنی چه؟ دختره چند نفعه سفارش کرده؟ مگه میشه نیای؟ مامان مامان بی مامان وقتی اونا بروی خودشون نمیارن یعنی چی؟ تو هم نباید بروی خودت بیاری؟ خوبه خودت گفتی نه؟ اگه اون گفته بود نه چه کار میکردی؟ رفتم مادر بدون اینکه بداند انگشت درست روی نقطهی گذاشت که قلبم را به درد می آفرد. دردسر همین بود که او گفته بود نه که من حالا تکلیف خودم را نمی دانستم. مادرم ادامه داد. دیگه به قول امیر دختر هفته هشتده ساله نیستی که. مثلا اگه که خدا بخواد تحصیل کرده ای؟ بعد از اونم اگه نیای فکر می چشمت باربر نمی داره. کاش می شد بگویم که واقعا هم چشمم باربر نمی دارد. که با محمد باشم و کنارش نباشم. نزدیکی و قریبگی برایم تلخ و سخت بود و از همه بدتر چیزی بود که آنها نمی و خبر نداشتند. اینکه او به من گفته بود به درده هم نمی خوریم و اینکه او مرا نخواسته بود. برای همین وقتی با او روبرو شدم احساس بدی می کردم، احساس حقارت نمی دانستم با چه رفتاری داشته باشم. تازه می اینطوری پیدا کردنش چقدر سخت است. با این افکار تلخ و پریشان محکم و عصبانی گفتم. به هر حال من نمیام. در اتاق را به هم زدم و به خودم دلداری دادم. نه نمیرم. رفتن من مخصوصا حالا که اون روز جلوی همه اونجوری رفتار کرده بودم چه معنی داره؟ فقط خدا می داند خرابی داشتم. حالی که قابل بیان و بازگویی نیست. بعد از سالها خدا خدا کردن، حالا پیدایش کرده بودم و میدیدم فایده ای ندارد. باز هم سرگردانم و بدبخت. سعی می کردم چهره را که آن روز چند لحظه دیده بودم مجسم کنم. اما تنها چشمهایش توی خاطرم مینشست و نگاهی که نمی توانستم معنایش کنم. حالا می فهمیدم که قادر نیستم با او روبرو شوم. و حالت طبیعی داشته باشم. از وحشت آنچه ممکن است توی نگاهش ببینم به خودم میلرزیدم از تمسخر تحقیر یا حتی بی‌اعتنایی که ممکن بود توی نگاه و رفتارش باشد در حالی که میدانستم اگر خودم را هم بکشم نگاه چشمهایم مرا لو می‌دهد مگر همیشه نمی‌گفت از نگاهم همه چیز را میفهمد. چقدر مسخره است که حالا بعد از هشت سال با نگاه از او توجه گدایی کنم و او با تمسخر نگاهم کند وای نه بمیرم بهتر است چشمم به خط نرگس افتاد که زیر شیشه میزن میزم بود نوشته بود اگر از جانب معشوق نباشد که ششی کوشش آشق بیچاره به جایی نرسد زیرش امضا کرده بود نیشه زهراگین چون این جزه حرفهایی بود که گهگاه به متلک به من میگفت و من میگفتم تو فقط بلدین نیش بزنی و حالا فکر میکردم واقعا چه شعر قشنگی است خدایا چقدر دلم برای نرگس تنگ شده بود اگر الان اینجا بود میتوانست مرا از تنهایی صدای مادر رشته افکارم را پاره کرد. تلفون از جا بلند شدم و با خستگی و بیحالی پرسیدم کیه؟ مادر گوشی را کنار تلفن گذاشته بود و رفته بود با تردید گوشی را برداشتم الو سلام مهنوز خانو منم فرزانه ای مامان پدجنس مرا کجا گیر اصلا نمیفهمیدم چه دارم می گویم فرزانه با خوش زبانی دوباره حالم را پرسید و خودش برای جمعه دعوتم کرد و هیچ کدام از بحانه را که من با بدبختی سعی می‌کردم ردیف کنم قبول نکرد و گفت ما جمعه رو انتخاب کردیم که شما هم وقت داشته باشیم. بالاخره مجبور شدم قول بدهم یعنی تا وقتی قول ندادم رضایت نداد آخ که دوست داشتم تلفن را بکوبم زمین و خرد کنم خدایا چرا حتی خوشبختی های مرا با خونه جگر قاطی کردی آرزو دارم ببینمش ولی با این حال و روز یک دفعه فکر کردم اصلا شاید جمعه او نباشد یعنی ممکن است نباشد اگر نباشد چه مسخره بود خودم هم نمیدانستم چه مرگم است مبادا واقعا اندیوانه شوم با همون در درهم و برهم درست تا ظهر جمعه مثل مار به خودم پیشیدم و با فکرهایی جور و جور کلنجار رفتم. هزار بار برخورد او را مجسم کردم و هزار بار رفتار خودم را سبک و سنگین کردم. و هزار جور تصمیم گرفتم و فکر کردم و آخر هم به هیچ نتیجه نرسیدم. فقط دلهوره و استراب بود و بلا تکلیفی